قصه های هزار یک شب چون شب دوم برآمد در خوابگاه شدند و باز از دختر وزیر تمتع برداشت پس از آن دختر وزیر از تخت به زیر آمده در پای تخت بنشست. دنیازاد گفت ای خواهر حدیث بازرگان و افریت را تمام کن. شهرزاد گفت اگر ملک اجازت دهد بازگویم. ملک جواز داد. شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت. خداوند قزال به افرید گفت ای امیر افریتان. چون گوساله بگریست و روی به خاک بمالید مرا بر وی رحمت آمد. با شبان گفتم که این گوساله را رها کن. همین قزال که دختر ام من است به پیش من ایستاده نظر میکرد و در کشتن گوساله همی کوشید و می گفت همین گوساله را بکش که گوساله است فربه. ولی من کشتن گوساله را به خود هموار نکردم. به شبانش دادم. شبان گوساله گرفت و برفت. روز دیگر شبان پیش من آمد و بشارت داده گفت مرا دختری است که در خورد سالی از پیر زالی ساهری آموخته بود. چون من گو ساله به خانه بردم، آن دختر روی خود پوشیده بگریست. پس از آن بخندید و گفت ای پدر، چون است که مرد بیگانه به خانه همی آوری گفتم مرد کدام است و گریه و خنده تو از بحر چه بود؟ گفت این گوساله بازرگان زاده است که زن پدرش او را با مادر او به جادو گاو گوساله کرده است و سبب خنده همین بود اما گریستنم از برای این بود که مادر او را پدرش سر بریده ای امیر افریتان چون این را از شبان بشنیدم از خانه به در آمدم و از نشاط پای از سر نمی دانستم و همین رفتم تا به خانه شبان رسیدم دختر شبان بر من سلام داد و دست مرا ببوسید و به کناری ایستاد پس از آن همان گوساله پیش و روی بر زمین مالیده بر خاک قلتید من با دختر شبان گفتم آنچه از این گوساله گفته ای راست است؟ گفت آری این فرزند توست گفتم اگر او را از این رنج خلاص کنی چندان مال بر تو به کنم که بینیاز شدی دختر تبسمی کرد کرده گفت مرا به مال حاجتی نیست اما با من عهد کن که اگر من از این گوساله سهر بردارم مرا به دو کابین کنی و اجازت دهی که به جادو کننده او جادو کنم وگرنه از بد او ایمن نخواهم بود گفتم خون دختر ام خود را بر تو حلال کردم آنچه دانی بکن پس تاسی پر از آب کرده و افسونی بر آن بر گوساله پاشید فلحال گوساله به صورت انسان برآمد من او را در آغوش کشیده به چشمش بوسه دادم و دختر شبان را به زنی او درآوردم او نیز دخترم مرا به جادو غذالی کرد او همین غذال است به هر سو که میروم آن را با خود میبرم چون به اینجا رسیدم بازرگان را در همین مکان دیده حکایت او را شنیدم بایستادم تا از انجام کار او آگهی یابم ای امیر افریتان این است حکایت من و این غذال قایت پیر دوم و دو سگش گفت طرف است. از سه یک خونه او در گذشتم دراندم پیر دوم خداوند سگان شکاری پیش آمد و گفت ای امیر افریتان این دو سگ برادران من بودند چون پدر من سپری شد سه هزار دینار زر به میراث گذاشت من در دوکانی به و شری نشستم و برادر دیگرم به سفر رفت. پس از سالی توهیده است باز آمد. من او را به دکان برده هزار دینار سرمایه به دو دادم. چند روزی با هم بودیم. پس از آن هر دو برادر عزم سفر کردند و از من همرهی خواستند. من به سفر مایل نبودم. آزم سفر نشدم. رنج و زیان سفر را به ایشان بنبودم. ایشان نیز ترک سفر کردند. شش سال بدان منوال هر یک جداگانه در دکانی بنشستیم پس از آن من نیز با ایشان موافقت کرده مایه برشمردیم شش هزار دینار بود من گفتم نیمه از این به زیر خاکندر پنهان داریم که اگر به بزاعت ما آسیبی روی دهد آن را سرمایه کنیم و نیمه دیگر را از بهر تجارت برداریم تدبیر من ایشان را پسند افتاد بدان سان کردند که من بگفتم آنگاه سفر کرده به کشتی برنشستیم. یک ماه کشتی همی راندیم تا به شهری برسیدیم. متاه خود را به بهای گران فروختیم. یک بر ده سود کردیم. پس از آن به مقصد سفر به کنار دریا شدیم. دختری در آنجا دیدیم که جامعه که در برداشت و با من گفت توانی با من نکویی کنی و پاداش نیکوییابی؟ گفتم آری با تو نیکویی کنم. گفت مرا کابین کن و به شهر خود ببر. مرا بر او رحمت آمد. او را برگرفته به کشتی آوردم. جامعه های بر وی پوشانده در محل نیکو جایش دادم و دل به مهرش بنهادم و از برادران بر کنار شده شب و روز با او به سر می بردم. برادران بر من رشک بردند و در مالم طمع کردند و به کشتنم پیمان بستند. هنگامی که من با دختر خفته بودم مرا با او به دریا انداختند. آن دختر در حال افریتی شد و مرا برداشته به جزیره برد و ساعتی از من پنهان گشته پس از آن پیش من آمد و گفت من از پریانم که ایمان به رسول خدا آوردم. چون مهر تو اندر دلم جا گرفته بود به صورت آدمیان پیش تو آمدم. اکنون بدان که برادرانت را به مکافات بدکرداری بخواهم کشتن. مرا حدیث او عجب آمد. او را از کشتن برادران من کرد سوگندش دادم و گفتم ایشان در هر حال برادر منه. پس آن پری مرا در رو بوده و در هوا شد و به یک چشم برهم نهادن مرا به فراز خانه خود گذاشت. من در بگوشودم و آن سه هزار دینار را که در زیر خاک پنهان بود برگرفته به دکان بنشستم. هنگام شام که از دکان به خانه آمدم این دو سگ را به زنجیر دیدم. چون اینها را چشم به من افتاد بر دامنم بیاویختند و اشک از چشم فرو ریختند و من از حقیقت حال آگاه نبودم. ناگاه آن دختر پیش آمده گفت اینان برادران تو هند و تا ده سال بر این صورت خواهند بود. پس من این دو سگ را برداشته همی گردانیدم که ده سال به انجام برسد و ایشان خلاص شوند. چون بدین مقام رسیدم ماجرای این جوان را شنیدم. از اینجا در نگذشتم تا ببینم انجام کار او به کجا خواهد رسید. چون پیر سخن را بدین جا رسانید افرید گفت خوش حدیثی گفتی از سه یک خون او در گذشتم پکایت پیر و استر چون حدیث پیر دوم تمام شد، پیر سیوم خداوند استر به فرید گفت مرا نیز حکایتی است، تر از حکایت هر دو، اجازت ده تا حدیث کنم. اگر تو را پسند افتد، از باقی خون جوان در گذر. گفت بازگو. پیر گفت ای امیر فریتان این استر زن من بود. مرا سفری افتاد، یک سال در شهرها سفر کردم. پس از یک سال بازگشته نیمه شب بود که به خانه خیش درآمدم. زن خود را دیدم که با غلامکی سیاه خفته است. چون زن را چشم بر من افتاد برخاست کوزه آبی گرفت و افسونی برو دمیده به من پاشید. من در حال سگی شدم. مرا از خانه براند. من از درب به در آمده در کوچه و بازار همین رفتم تا به دکان قصابی رسیده استخوان خوردن گرفتم. چون قصاب خواست به خانه رفت من نیز بر اثر او بشتافتم چون به خانه رسیدم دختر قصاب مرا بدید روی از من نهان کرده گفت ای پدر چرا مرد بیگانه به خانه آوردی قصاب گفت مرد بیگانه کدام است دختر گفت همین سگ مردی است که زنش به جادویی او را بدین صورت کرده و من میتوانم او را به صورت نخست بازگردانم غصاب متمنی خلاصی من گشته سوگندش داد دختر کوزه آبی خواسته فسونی برو دمید و بر من پاشید من به صورت اصلی خیش برآمدم و دست و پای دختر را ببوسیدم و درخواست کردم که زن مرا به جادویی استری کند از آن آب اندکی به من داده گفت چون زن خود را در خواب بینی این آب بر وی بپاش هر که خواهی همان گردد پس من آب را گرفته بر او پاشیدم و خواستم که استری شود. در حال استر گردیده و آن استر این است. افریت را حدیث او عجب آمد و از استر پرسید که این حدیث راست است؟ استر سر به جنبانید و به اشارت بر صدق کلام او گواهی داد. افریت از قایت تعجب در ترب آمد و از باقی خون بازرگان درگذشت چون شهرزاد قصه بدین جارسانید بامداد شد و لب از داستان فرو بست خواهر کهترش دنیا زاد گفت ای خواهر ترفه حکایتی گفتی شهرزاد گفت اگر از هلاک بهرحم و ملک مرام نکشد در شب آینده حکایت سیاد که بسی خوشتر از این حکایت است گویم ملک با خود گفت که ترفه حکایت میگوید این را نکشم تا باقی داستان بشنوم چون روز برآمد ملک به دیوان نشست و کار مملکت بگذرانید وقت پسین از دیوان برخواسته به حرم سراوی شد